بسم الله الرحمن الرحیم سلام و ارض به شما بینندگان محترمی شبکه نفت و همچنین سلام خدمت میهمان محترم این برنامه جناب آای استاد رائفیپور در این برنامه ما به دنبال کنکاش و بررسی و بقایه صورت گرفته در منطقه طی دو سال اخیر و نگاه به این بر اساس دیدگاه آخر و زمانی هستیم سؤالاتی که قصد پرسیدن آنها را داریم صرفا سؤالاتی میباشد که در ذهن بسیاری از مردم ایجاد شده و ما به دنبال پاسخ دادن به آنها بر اساس اهادیث و روایات شیعه هستیم سعی می کنیم از هر گونه تطابق دادن افراد و اشخاص با شخصیت های آخر زمان در این برنامه خودداری کنیم. آقای استاد، برای آغاز بحثمون، سوالی که در ابتدا می از شما بپرسیم تحولات دو ساله اخیر منطقه آسیه غربی و چگونه از دیدگاه و منظر آخر زمانی قابل تحلیل می بسم الله الرحمن الرحیم اگر اجازویت ما یه عرض عداب و سلامی هم با بینندگان شما داشته باشیم نرز سلام و و احترام دارم خدمت شما بزرگاران امیدوارم که هر هستید موفق و پیروز بشین خدمت شما عرض بکنم که کلن از سال دو هزار به بعد شکل دنیا آخر و زمانی شده یعنی من در یکی از سخنانی ها هم عرض کردم چند وقت بیش سخنانی به عنوان یمانی دروغین مؤسس پیو نزد هایی رو انجام داد بعد سال 2000 خیلی عجیب بود در کمتر از شش سال اعتقاد به ظهور حضرت مسیح در طول عمر مسیحیان و اعتقاد به ظهور حضرت مهدی در طول عمر مسلمانان دو برابر شده بود یعنی در برخی از کشورها واقعا آمار عجیب بود مثلا در افغانستان هشتاد و چهار درصد مسلمانان میگن مهدی علیه السلام در دوران عمر ما ظهور خواهد کرد یعنی اصلا میل به ظهور در واقع به وجود آمده به قول برخی بزرگان می که یا میفهمید ندارید یا خدا می که ندارید یعنی جالبه می بینیم بعد از افغانستان دومین کشوری که این آمار رو داری یعنی بیشتر آمار رو داره 7 دو درصد عراقه یعنی هرچی اوزا سخت تر شده اعتقاد به چی شده بیشتر شده یعنی رابطه مستقیم وجود داره بین این مسئله خب خدمت شما ارز بکنم که به طبع اون هرچی ما داریم پیش میریم اصلا سال 2012 که دیگه سالی بود که اینو مشخص گرده بودن من خاطرم هست با همین امایی برنامه با شبکه نسر زاشتیم توها الان هم دوزار سیزدن ایم یعنی هنوز تبر وجود داره ما میخوام این نگاه آخر زمانی باید دسته و صحیح باشه. یک نگاه نگاهی که در ها دارن با ما دوستان آخر و زمان اونطور که میخواند بسازن دوستان ما عزیزان ما، بینندگان بزرگوار ما توجه بفهمند اونها روایات ما رو بررسی کردند من یکی از این نویسنده حالا اسمش را نمیبرم که و خودم موجب شاش نشیم کتابش رو بررسی می تا کتاب شهید متحری و سرس رفرسدن کتاب اهل سنت رو خونده بود الماوتای مالک رو خونده بود صحیحه این رو خونده بود صحیحه بخاری صحیح. سن از سنن ترمیزی حدیث آورده بود یعنی کامل دارن آنالیز میکنه اینجا یه بحثی پیش میاد که از کجا معلوم دشمن بر مبنای احادیث خودمان آخر, آخر زمان سازی نمیکند و این الان یه فتنه داریم تا عراق فردی در بسره ادعا کرده که پنجامی فرزند آقا صحابه زمانه احمد الحسن امانی خوب شما ببینید وقتی با اینها صحبت می‌کنید استدلال برای شما میرند چی میرند چند تا روایت که در روایت ما وجود داره که بعد از امامای دوازدهگانه ما دوازده تا هم مهدی داریم مهدیین خوب اینو غالب حدیثی های ما میگن که این یعنی حدمت رو شما مرز بکنم هم همون دوازده اماما یعنی رجعت. رجعت اهل بیت مو تو زیارت جامعه کبیرم به اهل بیت میگه محدیون خب این اونه اما اینا من می دست میذارم نخیر یا روی سری روایت ضعیف دست میذارم میگن نه ببینید اینا با هم فرق دارن خب مثلا یه مثال من برای شما بزنم جابر حدیث رو نقل میکنه میگه من خدمت حضرت زهر سلام الله علیها رسیدم یه لوحی بینش دست دو دست شریفشون بود بعد در این لوح ایشون اسم امامان بعد از امیرالمؤمنین نوشته بود دوازده امام خب مولنولدها یعنی اس فرزندانی که از حضرت زهرا سلام الله علیها، خب 12 امام از امیرالمؤمنین که فرزند از حضرت زهرا هستش که 12 امام ما اصل حدیثو بررسی کردیم تو اصل حدیث یعنی اون که سند ضعیف داشت ولده‌ها داشت اصلش ولده‌ها نداشته یعنی ناقل حدیث اشتباه کرده خب مثلا اینا اومدن دست داشتن رو اینکه نه اینو شروع دیگه بعد از حضرت مهدی یک کسی دیگه در در حد مقام عصمت میاد و این امام 13 خب من قبلاها با خودم میگفتم این منافقا یه روایت دارن که تا دا اخر الزمان یه مردومی یا سیزده امامی اینو علیه جمهوری اسلامی استفاده میکردن میگفتن شما امام خمینی ام سیزدهم میدید من همیشه با خودم هم میگفتم خب ما امام, خمین امام سیزده هم ام سیزدهم که نمیدونید اینجا امام به منی پیشوا به معنی رهبر میصن امام زمانه اهل سنت هم میگن به امام مالک امام ذهبی امام احمد بن همبل خب به معنی پیشون امام یه چیز دیگه است بعد همیشه دنبالی میگاشتم که اینا کیان بعد دیدن پیدا شدن یعنی احمد العزنی اون امام میدونن خب بعد شما ببینید ببینید این اف این اف این فردیه که خودش با دستگاه اطلاعاتی های. سهخورات عراق در ارتباط بوده بعد از اینکه ارباد دست امریکا یا میفته تمام اطلاعات ما دست یرات متحعدده میفته دست سیاه میفته و موساد، اوننا رو میکان بررهبری یعنی می از اددیس خودمون استفاده میکنه. این نوشتر بعد من عرض می کردم ابت بحثمون الان از کجا مردم که او داره ودیث آن را بررسی میکنه میگه خب طبق ادث اینها باید در نزدیکی ضوقوع فردی خروج بکنه بسم فلان خ خب فلانی به این بتراشید درست نه خب جمعیت کثیری هم میمونن اینجا گیر میکنه. متاسفانه بازار فرج و اله احادیسنا هم زیاده فرج و اله روات احادیسنا کمه میگه رجوع کنی به احادیسنا کجا گفته رجوع کنی به احادیسنا فرمان فرج و اله روات احادیسنا اونی که میفهمه حدیث شناسه باید بری بهش رجوع بکنی وقتی یک نفر خدمت شما عرض بکنم همینطور رفتن و تو فضای اینترنتو گرفته آقا نمای حدیث هم داری میدید آقا تو از رجال چه میدونی؟ از نمیدونم علم درایه چه میدونی از علم حدیث چه میدونی خب این فکر میکنه همینطوری دیگه مثل کتاب سورس میتونه بهش رجوع بکنه بابا این علمیه مثلا حضرت آیت الله شوری زنجانی در رجال ایشون عمرشو گذشته ایشون به عنوان علاوه بقیه حالا نکات دیگه که ایشون دارن به عنوان رجالی مشهور میشناسن잖아 در جهان تشیع خب در در جهان اسلام به از اون بزرگان دیگه هم هستن حالا 50 سال 70 سال اونشونشون گذاشتم و یه نفر به تم چش رو حدیث ما حدیث هم که فلان به همانهه. این خطر من گوشت میکنم که از تو دنا با مستنعط هممثل زور بسیار نزدیک است و یه یهها بیرون نیاد. اما بحث آخر زمانی پس من یه نگاه نگاه اونوریی دارم یه نگاه هم نگاه اسلامی خودمون ها میگییم اما تطبیقی در کار نیستش میگیم اقا کهطورره باید هست اینه این اینم که دارم عرض میکنم بنده این مبهث رو چک میکنم. یعنی باور کنید همین چن... تقریبا ده روز پیش بود بنده برای یک راوی موسی امران عمران یا موسی عبدالله نخعی که کدوم اینا درست در سند زیارت جامعه کبیره بود نشدم رفتم گفتم رفتم صبح تا بعد از ازو دعوا کردیم بحث شده که بین کدوم یکی اینا درسته یعنی ما هم از نظر متخصصین این حوزه چیکار می‌کنیم استفاده می‌کنیم من 10 روز پیش مرکز تخصصی مهدویت بودم و اونجا اصلا بیسش واسه حوزه است. تمام متخصصینش روحانی هستن و کار میکنن رو اون بحث عرض میکنم خدمت ببینید اوزا دو سال اخیر با توجه به این شرایط و زمانی بحث بیداری اسلامی یک نگاهی رو در مردم به وجود آورد، نگاه همراه با شوق. شما هم نمیخوایم نگاهی که از شور و شوق به وجود اومده رو چیکار بکنیم؟ بکشیمش و سرکوب اما میخوام این نگاه شعور هم داشته باشه. ما معتقدیم شعور شعور شور. هر سته کنار هم دیگه باشه اون شعار بزرگ ما انبقیت اللهان و سمساق المنتقم در این گذاره محقق خواهد شد شور و انرژی هم داریم بر رسیدن بهش اصلا اون شور انقلابی باید باشه اما برای این بده کنارش بده یک, یک گریزی باشه یک فرمودی باشه یک راهکاری باشه یک کانالی باشه که میگه شور این بست میخواب این بحث کار کنیم ببینید حوزه منطقه بیداری اسلامی پیش اومده ها تمام سعیشون رو دارن میکنن که به سمت خودشون پیش ببرن اسرائیلی ها با غربی‌ها اونا با نگاه یهودیزی شده و سعی خاص خودشون رو دارن علاوه بر اون که نگاه منافع ملی داره یه نگاه صهیونیستی که عقیدتی باز جدا اونجا وجود داره برخی از کشورها دنبال منافع ملی خصوصی خودشون هستن مثلا ترکیه دوست داره برای پیوستن به اروپا شروط غرب رایت کنه که یکیش تضعیف سوریه است کلمت شما عرض بکنم یک در حال گزار در این منطقه هست مثلا عربستان نه پارلمان داره نه حزب داره نه انتخابات داره توی این دنیایی که این همه هر روز توی تلویزیون و تو محاوره شما دارین صحبت میکنه از چی از حقوق بشر گونا چقدر میتونه دمو دم میاره از دموکراسی صحبت می‌کنه زن حق رانندگی نداره بالای 10 سال باید پوشیه بزنم بیان تو خیابون پشت ماشین بشینه یه جرمه ماشین روشن بشه جرمش بیشتر میشه در این حرکت ببینین که پدرش در میاره خب آها این جوریه؟ تا چه جوریه؟ تو کی می میتونید سرپوش بگذارید؟ از اون طرف مثلا در مورد جمهوری اسلامی غرب بیاد بگه آی حقوق زنان رعایت نمیشه فلان به هم خب این واقعا فاجعه در حال وقوع در حق زنان در عربستان هیچ حقی این بدبخت ها ندارن نه رأی نه اصلا فقط یک کلام به معنی واقعی کلمه خب اینجا چه تا کی میتونید عمو بیارید یعنی دیگه مردم هم کشش ششون ندارن ببین دیگه تا که میتونستی شما حسنی مبارک بذاری بالا سر مردم بین علی بذاری بالا سر مردم که کارت صادر کنه برای مسجد رفتن کارت شناسایی داشتن که مسجد می رفتن. برای عبادت کارت شناسایی داشتن می نمی همین امروز که ما داریم شما صحبت میکنم ترکیه ریخته به هم مردم می فهمن دیگه گوزشته اون عرصه میگه شما بتونی سانسور بکنی رسانه نباشه و فلان جو اینجور چیزا مردمشون شکایت داره از این واسه که ترکتو شده عامل ابزار استعمال از طرف دیگه نگاه ضد استکباری بر منطقه آسیای جنوب و غربی آسیای غربی و همون که بهتر ما استفاده در عوض خاورمیانه چون وقتی ما میگیم خاورمیانه مبنا غربه بر مبنای خودش میگه خاور دور خاورمیانه خاورای نزدیک نخیر ما بر مبنای خودمون میسنجیم آسیای غربی دیگه اینطوری نیستش آقاستی غربی برش فرهنگ استک پرسیده و میزارن از اسرائیل توی این منطقه کسی اسرائیل مهمون ناخانده اینجاست مهمان هم نیست اصلا به زور وارد شده است من لفظم پس میگیرم لفظم مهمان هم کسی که بازم ناخانده اومده در جانز رو خواهد پذیرایی کنی نخیر قده سرطانی باید بره بیرون مردم مال شما صدی بیایید درگیر بحث شیوسونیشون کن بحث سلفیگری یک طرف یه قطره سلفی به وجود بیارین این طرف هم بحث ش... شیعی علوی به وجود بیار نمیتونین رو سرگردشون کین تو یه جای دیگه وقتی اسرائیل حمله میکنه به سوریه مردم هوشیار بشن تو مصر مردم ریختن بعد گفتن اشتباه کردیم تو ترکیه مردم ریختن به هم دیگه یعنی این فضا واقعا فضا ملتهبیه از تو دل این یک نقشه جدیدی رو خواهد آمد نقشه جدیدی که نه الزاماً نقشه مرزها عوض بشه نقشه چینه که تو اون یک ما یک نظم مدرن جهانی خواهیم داشت و ما معتقدیم این نظم نوین جهانی اسلامیه نظم نوین جهانی که دوست داره خطوت خودش و دشمن مقابلش مشخص کنه شما چه شیعه باشی چه سنی هیچ فرقی نداره ولاش از این صحبت منو زیر نویس عربیان بکنید خب چه شیعه باشی چه سنی هیچ فرقی نمیکنه این آیه قرآن مد نظرتونه یا ایها الذين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء ايكسانی ای که ایمان آوردیید کسانی رو که دینتون رو مسخره گرفتن به سخر میگیرن خدا پیغمبرتون رو به سخر میگیرن از یهودیان مسیحیان کافران اینا رو ولی خودتون نگیرید اصلا ما میگن اینجا ولایا به معنی سابختیاری هم نیست نظر اهل سنت میگه یعنی دوست نگید ما الان سوال می‌پرسیم که ببخشید اون کشوری که سلمان رشدی رو ازش داره محافظت می‌کنه همون که در کتاب آیات شیطانی به قرآن توهین کرد و قرآن رو به سخره گرفت در یک رمان تنز کی ازش داره محافظت می‌کنه امای 5 انگلیس الان آقای قطر آقای عربستان آقای ترکیه شما براتون با کی هستید به من بگید اون که اون که فیلم موهن موهن می‌سازه برای علی پیامبر علیه جان امت اسلامی الان تو کدوم کشوره کی برش محافظ گذاشته ایالات متحده امریکا تو جمهوری اسلامی و ایالات متحده امریکا ارتباط داره یا عربستان و قطر و ترکیه مردم که گیر کردن و قرآنشون انتخاب بکنن یا این سیاست بازی های یکمشه حکام رو. یعنی شما از این بود هم ببینید اما بود دینیش هم بگم بود دینیش هم, بود دینیش هم که ما یه سری نشانه داریم. و این نشون ها گفته شده پس کارایی داره بگن گفته نمیشود چه کارایی میتونه داشته باشه اول اینا بر اهل فنه این یک دو یه جاهای لازمه که مردم یه سری حقانیت‌هاشون اثبات بشه درسته ما مثلا روایت داریم که ظاهر از آقای امام کاظم از دو امام نقل شده از امام کاظم ظاهرا اوسقه میفرمان که در آخر زمان مردی از نسل خودمان در قوم قیام میکنه، مردم دورش جمع میشن تو آبو روح الله، اینا کزوبرالحدیدن مانند پاره های آهنن، هرچی چی میکشیشون اینا تمام نیستن، این پرچمو نگه میدارن میدن دست امام صادق. خب وقتی ما این نگاه میکنیم این چقدر با انقلاب ایران جور قیامی که از قوم شکل میگیره با رهبری امام خمینی با نام روح الله و واقعا تو هشت سال جنگمون زوبرالحدیدو ندیدیم؟ پارهای آهن بودن و خب این واقعا شورنگیزه من یک خود خودم شخص به شخصه این باید فکر می‌کنم لذت به میده میفهم آرمان هامون درسته خب این یه کارهای کارایی هم کارایی دیگر هم داره که الان محل بحث ما نیست رو